تو یار اون زین او برونه او تو حساب کن بیابو مهاسن امروز از خونه. خب دوستان گرامی در روزهای گذشته که خدمت شما عزیزان بودیم ابتدا سعی کردیم که جامعه ای رو که حضرت عبادل روسین علیه سلام در اون دست به قیام زدن بررسی کنیم خصوصیات معاویه رو دیروز بررسی کردیم و خصوصیات مخاطبانی که مخاطب در حقیقت خطبه منای حضرت ابوالفضل و حسین علیه قرار گرفتند یکی از ویژگی های بارز سخنان حضرت ابوالفضل و حسین علیه در سرزمین منا استناد به آیات قرآن هست و ما هم این آیات رو بررسی خواهیم کرد که اصلاً چرا حضرت ابوالفضل آیات قرآن رو انتخاب کردن و چرا این آیات رو انتخاب کردن به کمک حجت الاسلام و المسلم استاد از کامل فرمودید زمان و زمانه و مخاطب و جایگاه که آقا ابو عبدالله برای در حقیقت جامعه شناسی مشکل جهان اسلام رو بررسی کردن رو در جلاد دو جلسه قبل به صورت اختصار مطرح کرد. گفتیم <تصفح> جریان نفاق به رهبری معاویه خصوص در 20 سال حکومتی که در جهان اسلام داشت اسلام رو از درون پوک کرد بله. بدعتها تجاوزها دور تجاوز کردن بله. بله دور کردن افراد شایسته که ها هم مبانی فکری رو تغییر داد هم مبانی اجتماعی رو تغییر داد هم اهداف حکومت رو عوض کرد تنها بینش ها رو عوض نکرد آدم تغییر داد اهداف هم تغییر داد و آخرین تیری که در حقیقت به دین جسم بیجان جهان اسلام زد مسئله موروسی کردن حکومت دینی بود که حکومت در حقیقت وظیفه داره که اهداف اسلامی رو به پا بداره دفاع کنه از مبانی دینی دفاع کنه از حقوق مردم تا انسانا بتونن به کرامت که مد نظر خدا هست برسونه همونطوری که گفتیم دین طرح خدا برای بشریت است تا انسان رو به اهداف عالی خودش برسونه بله. و این طرح ممکن نیست مگر با ولایت همیشه گفتیم توحید و ولایت و امامت یک خط مستمر یعنی جریان بسط و قدیر و در حقیقت جریان که در آخر، امام زمان بحنی. تجلی پیدا میکنه یک خط مستمر وحی از از هم قابل انفکاک نیست بحنی. این تعبیری که در دعا داریم اللهم عرفنی نفسک خدایا تو خودتو به من بنشان شناسایی کن فر اینکه انم تو از رفینم نفسک نم عرف رسولت خداشناسی اگر به رسالت منتهی نشه چیزی نیست بله. یک ایده خامه رسالت اللهم عرفنی رسولک فا این نکه این لم تو اعرفنی رسولک لم اعرف حجتک رسالت باید با ولایت تو ام ب... بشه با امامت اللهم عرفنی حجتک این لم تو اعرفنی حجتک دلل تو اندین بله. از دین تو گمراه میشه این جریان و خط مورد اشکال پیدا کرد خب آقا عبدالله حالا بنا بر نقری یک سال قبل از مرگ معاویه یا دو سال قبل از مرگ معاویه سال 58 و 59 چون 60 معاویه فوت کرد مرگ زمان مرگ معاویه هست گرکت آقا عبدالله بر همون سال شروع میشه آمدن جمعیتی رو که از نخبگان فرهنگی و تأثیر گذار جامعه اسلامی و از صالحین زمان خودشون هست رو در مناجم کردن چی فرمودن؟ این خیلی مهمه بلد. که هزد چه کسانی در کجا و چه مطالبی رو داریم وارد مطالب میشونی خواهیم بس گم نشه خیلی مهمه امام چه جامعه شناسی دارند و چه هدفی رو مد نظر دارن با چه ادبیاتی؟ بله. حضرت میفرمان فرمان اعتبرو ایو حناس بعد از اینکه حضرت هم دو ثنای خدا رو داشتن و شهادات اینش رو متفه کردن دارن با مردم صحبت میکنن اعتبرو ابرد بگیرید ایو حناس توجه به تاریخ برای دست یافتن به روش زندگی امروزه بله. سنت های تاریخی استثنابردار نیست اگر بنی اسرائیل به قدرت رسیدن حضرت موسی به خاطر تبعیت از وحیشون بود. من. اگر خداوند بهشون عنایت کرد اونها را رو از رود نیر رد کرد، فرعون با اون قدرت جهانی که ادعای خدایی می‌کرد، خار و ذلیل کرد به تعبیر قرآن به ما صبر به خاطر اینکه شما صبر کردید، استقامت داشتید، موسی رو تنها نگذاشتی رسول الله فرمودن که امت من همانند بنی اسرائیل، همونطور که اونها به هفتاد و دو فرقه تیکه تیکه شدن شعب شدن فتنه ها گرفتار شدن زلالت ها گرفتار شدن به تیه و سرگردانی رسیدن امت منم این گام ها رو گام به گام خواهند تیه کرد اعتبرو عبرت بگیرید بزرگان ایوه ناس توده مردم به ما و الله به اولیاء اون چیزی که خدا اولیاء خودشو موعظه کرده پس یه عبرت هست یه موعظه. یاد بگیرید فکر تکنید همیشه انایت خدا و حجت خدا با یک ملتی هست عنایت حق دائر مدار به نسلحت و صبر شما و استقامت شما از خدا به کسی عقد و دائم نخونده نصرت مؤمنین رو وعده داده شما باید در مؤمن بودنتون ثابت قدم باشید خب خدا چی از و و کرده موعزه کرده؟ اینکه که منسوع فنائهی احبار خداوند اومده عجیب سوء فنائهی بد توصیف کرده خوب توصیف نکرده احبار نیکان و برجستگان جامع است ما یه ربانیون داریم یه اهبار داریم اهبار علمایی را میگویند که نقش تأثیر گذار تبیین دین دفاع دین و طرح دین رو بهعهده دارند شما میگن اهبار بله. که خیلی شایستن اگر به وظیفه خودشون عمل کنند و بسیار گرفتار خواهند بود اگر وظیفه خودشون عمر نکنند ما همینطور که خدمتون از کردیم، از کردم ببینید یک تره دین داریم یک از کنم خدمتون فهم دین داریم یکی اجراع دین رو داریم کافی نیست بگیم آقا ما دین رو مطرح کردیم دین رو توضیح دادیم تو کلاس های خوب رو بیان کردیم تو کتاب های خودمون نوشتیم خوبم نوشتیم سه ابتلا ممکنه اتفاق بیفته در بیان دین ممکنه بدعت‌ها را بیفته در بیان دین ممکنه تفسیر برعی بشه دین رو بد مطرح کن جوری مطرح کنیم به نفع باشه کاری که بنی اسرائیل کرد اومد از دین جوری مطرح کرد که حکومت خودشون حفظ بشه قسمتی از دین رو اسپحتی رو بگید بله. بعد مطرح کنیم جامع مطرح نکنیم جامع بیان نکنیم و بعد اجرا کنیم دین در فهمش در طرحش و در اج... اجرا احتیاج به محافظ داره محافظی هم احبارن علما هستن بدون تردید بله. هم در فهم دین و بیان دین هم در طرح دین هم در اجرا هم در اجرا اینها ما احتیاج به بزرگانی داریم که از خدا و از معصومین از اولیا بگیرن واسطه باشن به خلق خدا برسن اینا حافظ دین هستند اگر عزیزانی که اهل مطالعه هستند کتاب حضرت امام رو ببینن در شن علما بیانی که اینا وارثن اینا حافظن اینا بعد این رو بیان کنن اینا افضل از افضل از انبیا هستند بنی اسرائیل هستند به خاطری که مدافع انبیا اینا هستند <تصفيق> حضرت می‌فرمائند من فنای علل احبار چرا اذ یقود لولا ينهام و والاحبار ان قولهم ال ما داریم وارد بحث میشیم منم چاره ای ندارم یه مقدار بحث رو تفسیری کنم ببینید بی <تصفيق> آقا با عبدالله علیه السلام ما نشستم زیر چادر حضرت مستمع کلام حضرت هستیم هم میخوایم کلام حضرت رو گوش بدیم بفهمیم و هم میخوایم اطاعت کنیم و امتصال کنیم و خود می دونیم چیه می خواهیم کلام آقا رو توضیح بدیم به مقدار فهم و بیان خودم باید. حضرت چهار آیه رو مطرح می کنن. سه تا از این آیات از سوره مائده هست آیه شصت و سه مائده آیه اولی که دارن بیان می کنن. هفتاد و هشت مائده چهل و چهار مائده و هفتادهی که توبه باید. در همین سطر کلامشون چهار آیه رو مطرح می کنن که انصافا هر کدوم از این آیات اگر انسان بخواد حقش رو عدا کنه جلسات متعددی رو میبره این آیه چی بوده در شأن چی بوده لغتاش چیست روایاتی که اومده به چیزه چه چی نکاتی رو مطرح میکنم اما مختصر این این رو مجبورم از شما اجازه بگیرم این آیات رو بخونم قبل و بعدش مطرح کنم تا عزیزان در جریان کامل قرار بگیرن اولین آیه‌ای که مطرح میکنن آیه 63 سوره ماعد است دقت کنید این آیه رو من میخونم آیه اینه که و تراکت عوض بالله من شیطان الرجیم و تراکتی را من هم یسار اون افل اتم ادوان اگرسول ما تو میبینی زیاد بسیاری از این بنی اسرائیل که این همی بهشون محبت شده حضرت موسیقی اومده این انایت رو دیدن هیچ قومی و بنی اسرائیل خدا بهش محبت نکرده لطف نکرده کدون است که آ... قضای آسمانی براش بیاده کدون قومیست که اینقدر بهش انایت بشه و تراکفی در منوم یو سارعون سرعت میگرفتند در چی در کوف یو سارعون افل و ول ادوان اف گناه دشمنی سرعت میگرفتند که یه جامعه بدی میکنه اما سرعت نداره سبقت از ما میخوان در خوبی سبقت بگیریم و اکده همون سه اینا ربا میخوردن سه میخوردن آتش میخوردن لب سماکان کانوی یعملون این آیه قبلی کرد خب اینا این کار انجام می دادن آقا مردم بده، از مردم رباخار مردم گناه می کنن؟ خب آقا این شما کجا بودید؟ آقا ابو عبدالله به این نکته توجه می لولا لولای انها همون ربانیون ول احبار چرا ربانی ها؟ ربانی یا اون عالمی که خدا ترس است دل به خدا سپرده است. چرا شما نشستین؟ چرا نشستین معاویه هر کاری داره میکنه، گناه میکنه، سخت داره پخش میکنه، داره افم عدوان رو داره شوی میده لولا، این لولا برای محاک لولا ینهاهم همون ربانیونه و الاحبار، مزارعه، من یک بار گفتم، یه بار کردم، یه بار بیان کردم، نه، به مقداری که اونا یسار اون ینها هم، درسته. اونا س... دارن بز... این این دارد... دارد... میشه ما هم شما هم باید بعد ادامه بدیم یه بله. بزرگی میفرمودن من گاهی زمان تاقود رد می شدن از خیابوند یک کسی از این افراد اون موقع رادیو درست بگرد تا ما مزید آهنگ قناش رو زیاد می کرد می با خودم واقعا دیدم که اگه بخوام هر هرباز بگم چقدر خسته کننده و رسول خسته نشد از بیان اقام مستمر رم و دلسوزی دقیقا طبیبی که مدیز رو میبینه که داره اشتباه میکنه دستش رو به خاک میزنه میبینه کوزاز میگیره میبینه دستش قد میسوزه با همه وجودش عالمی که خدا رحمت کنه یک شخصی در مورد حضرت امام فهمود امام درد دین داشت مستمر درسته این خیلی مهمه دیندار بودن و درد دین داشتن خیلی هم هم مستمرن مستمرن احسان بعد در یک مقطع در یک مقطع در یک زمان قه کنیم تو خونه بریم بریم ذکر بگیم نه اینو از ما نمیخوام ما باید حضور داشته باشی لولا ینا ها همار ربانیون ول احبار ان الاف ال ف لا اكل هم... اكلهم الصلب اسما یس بعد ک... یسنعون اون چیزی که ساخته میشد توده مردم گناهکار شده بودن یوساره اون افتر افتر و خواسم هم ساکت شدن بدکاری این صنعت بدیه بنده. خدا نهشون میکن این آیه اول رو و قالت الگهود چی میگفتن اینها ها اینها الله مقلوله اینها چه در اندیشه شون و بیاناتی که از اندیشه شون و معارفشون مشکل داشتن من نکته خدمت رو بکنم جامعه ای که خدا رو باور نداشته باشه و خدا رو مؤثر در جامعه ندون محافظت نمیشه منه. ما باید خداخواهی خداجویی و خدا ترسی رو ترس برخواسته ای از عشق بچه مامان و دو مادرش رو دوست داره اطاعتش بعد از فهمش درکش نیازش و ترسش ترس از جدایی خوبی که از خدا میگیم خوف از جدایی و خوف از محرومیت است جامعه ای که خدا جوی باشد خدا باشد یه امنیت درونی درش ایجاد میشه درسته. و ایجاد عشق به خدا به دوش احبار رهبان ربانیون این اصطلاحاتی که قرآن نسبت به علمای بنی داره. درسته. علمای بنی اسرائی وقتی من تمام کنم بره. من می‌خواستم این آیه رو تشریح بفرمایید این آیه رو دقت بفرمایید. اینکه روحانی اونهایی که شاخصن اهل نماز شبن، اهل توجّن، اهل قرآنن، اهل اهل هستن هستند. هم باید بهشون مراجعه بشود و اونها باید در دسترس باشند. بله. حفاظ ندارم. مأمور نگذارن مردم گرفتارن. معظمت بتونن اینا در دست دو قشق هستن که نباید مأمور بذارن یک طبیبه بله. یکم روحانیه اینا طبیب جسم و طبیب رو دوسته. اینا باید در دست راست باشن اینها باید کاری بکنن جوری بهره بر اینا متهرن بله. که اگر کف خدایی نکرده یک نقصه ایجاد میکنه اینا محکم کنن مرد یک وظیفه مردم دارن که به اینها مراجعه کنن حالا من این شرا تو صحبتم توضیح میدم برای. که نقش علماء جایگاه علماء و حفاظت دین به خاطر اینکه که علماء دارش بودن که امروز متاسفانه داره کمرنگ میشه هم علماء دارن تو دستگاه خوبا موندارن دستگاه اجرایی میرن بعضی از خوبتره ها موندارن درها رو میبندن به شما راجع نمیشه مردم بیکس میشن برای. و مردمی که بیکس کس به شنجرت معنویق قطعا تو اومه شیطان رو خواهد ج فاصله رو بگیریم باز کردیم از که در خطبه هم از کردن در روز سوم محرم در خدمت شما هستیم و امروز در تقویم دل روز رغیه است نازدانه سه ساله بوستان حسین علیه السلام و رقیه یعنی یک دنیا احساس و عاطفه در کهکشانی از مظلومیت یعنی خرابه و چند سوال از سر بریده پدر بابا بابا چه کسی محاسن تو را خونین کرده بابا چه کسی رگهای تو را بریده بابا، چه کسی در این کودکی مرا یتیم کرده؟ بابا، شبها وقت خواب چه کسی برایم قرآن بخاند؟ چه کسی با دستهایش موهایم را شانه کند و عشقهایم را پاک؟ چه کسی با هایش قصه هایم را بزدا بابا چه کسی دلم را آرام کند بابای شجاع من چه کسی جرأت کرد بر سینه تو بنشیند چه کسی جرأت کرد سرت را از تن جدا کند بابا حالا چه کسی من یتیم را پرستاری می کند تا بزرگ شوم جان فدای تو باد که مظلوم ترین بابای آلمی کاش مرا هم با خود میباردی خبر دارم که مهمان منیم امشت پدر ثیबत رقیه ابی عبد الله در خرابه شام ببین ویرانهران زخم سان کشد شرا ابی عبد الله کثاف اما خدا اونا رو گرفت ابوز هر کدام یه آینه به ما حسین داد هر وقت دلش برای اونها تنگ میشه تو این آینه اون رو ببینه به خودش تسلی بده میگم هر وقت یاد ما در میگن می این سه ساله مو نمیزاست شکل و شمایلش به حضرت زهرا میمون هر سه‌پهلوی شکسته که رسیدن به تو که به زهرات اصرار عزت زهرات و وجودش بود از زهرات درد زیاد داشت ولی هیچ وقت دردش رو به کسی نمیگم این سه سالم هم جور بود پای تا سرم از شوقت تو چشمم اما به نسیم سر ظلیفت تو سراب ها رغ یه خواب بابا را دید خواب بابا را دید که بابا اومده این در دامن بابا نشست با بابا, بابا درز دل میشه. خب معلومه دیگه؟ همش گفتنی نی معلومه یعنی اگر یه بچهی مثل رقیه خواب باباشو ببینی در دامن باباش بیشینه چی میگه بابا با؟ بابا دلم قرار تایی بود بابا بابا منتظرت بودم بابا بابا جون سفر خیلی برام سخت بود بابا در نامو به عمم نگفتم بابا بابا پاها ما نگاه بکن قابله زنی بابا پیش می کردم میای بغلم میگیری بابا بابا تازیانه بهم زدن بابا فرص نکیدی پیچ در میان دشمن غلت کنم بابا سر بابا رو گذاشت تو دامن یه نگاهی به رقهای بریده کرد بابا دردم زیاد بابا فصلات بزن کو می من اللذی قد عبری بابا کی رگای گردن تو بود می بود خونان چرا چون بند شوده پروان بابا کی باهوی گردن تو بری بابا بابا کی مرا به این کودکی یقین کرد بابا میبینی من در خرابه هستم بابا میبینی وضع من چی ناگهان سر یه طرف بچه یک طرف زینب مظلومه نگاه کرد دید داغ بزرگی روی دلش آمده رو از دنیا رفته دهتو و تعذیت میگم فررستیدن ایام محرم رو به شما و هاتون مقبول باشه انشالله دوستان گرامی با کاربان کربلا بسم الله الرحمن الرحیم بعد از اینکه که امام حسین علیه السلام در دوم محرم الحرام وارد کربلا شدند و خبر به گوش عبیدالله ابن زیاد در کوف رسید او عمر ابن سعد رو معمور کرد که همراه با سپاهی به کربلا بره و به مقابله امام حسین علیه السلام به عمر سعد یک شخصیت دنیا طلب بود و کسی که پیشتر به او وعده حاکمیت ری داده شده بود و به طمع حکومت ری فریفته دنیا شد در حدی که آماده شد که با شخصیت مثل امام حسین علیه السلام مقابل بشه و گرچه بعضا گفته شده او تلاش میکرد کرد حتیل امکان کار به جنگ نی انجامد اما متاسفانه روحیه دنیا او او رو به این سمت سوق داد و گفته شده در سوم محرم الحرام عمر سعد وارد کربلا شد و از اونجا نامه نوشت به ابن زیاد و خبر داد ورود امام حسین علیه السلام به کربلا رو و مذاکراتی که احیاناً میخواست انجام بده با امام حسین علیه السلام و تلاش داشت البته که کار به جنگ نی و امام حسین رو قانع کنه و راضی کند که با شخصیتی مثل ابن زیاد و با یزید بیعت بکنه اما خب نه امام حسین علیه السلام فردی بود که چنین بیعتی رو بپذیرد بنا عمر سعد کسی بود که بتواند دست از دنیا بکشه و همین مسئله رفت رفت منجر شد به این که این سپاهیان پیاپی اعزام شدند از کوفه به کربلا و روز به روز بر تعداد سپاهیان افزوده میشد و رفته رفته مسئله تقابل و جنگ میان سپاه حق و این سپاه باطل متأسفانه مسجلتر می می‌شد و به قطعیت می رسید و به گونه‌ای پیش رفت که نهایتاً چاره ای جز جنگ باقی نماند چون سپاه امام حسین و اون شخصیت خود حضرت شخصیتی نبود که گردن به و سر خم کند در مقابل کسی همچون یزید ابن معابیه حبیبی حسین خب سخنانه و جفرستان و مسلمین دکتور محمد رضا جبایی رو شنیدید و این بخش با کاروان کربلا هر روز تقریم شما عزیزا میشه و روزهای مختلفی روی که ابو عبدالله سپری کردن تا به آشورا رسیدن رو بررسی میکنیم در این بخش گویستد کردن نقش اخبار و ربانیون در عمل کردن به وزیفش کاری بود که ابو عبدالله رسی نره سلام با توجه به آیات قرآن در روش سخن گفتن آیه لاجوالی در خدمت هستیم آیه 63 مصوری مبارکه ماهیده رو فهم مودید آیه خشفه. بعد آیه 78 رو من که فرمودید. شما آقا با عبدالله چار ای که در تیتر بحثشون مطرح کردن آیه اول وظیفه ربانیون و احبار رو مشخص کردن بله. از علمای یهود علمای یهود چون کوتاهی کردن نه گفتار زشت اونها و اعتقادها و باورای اونها رو اصلاح کردند و نه اومدن از کردار و اکل هم و سخ حرام خوریشون جامعه ای که حرام خور شد به طبیل آقا عبدالله به کوفیان گفتن شما شکمتون پر از حرام شد اصلا چیزی نمیشنفی شما دارین بیاناتی رو که قبل از صحبت من پخش کردی شاید انسان سوال کنه خب شما حسین رو خواستید شهید کنید خب کشتید که چرا از تواندید چرا دنبال بچه ها دویدید دختر مسیبت زده چند ساله که فرار کرده تو خیمه جمع شدن خیمه رو سوزوندی این دیگه اینا رو دنبال اینا دویدن چیه این دیگه خباست نفسونشون نشون بده حالا بزرگانشون خواستن عبرت درست کنن جامعه ای که آلوده شد جامعه که گناه کار شد بله و بزرگانی که بنا بود چراغ بودن خاموش شدند پنهان شدند و کنار رفتن این اثرات رو عذرت دادن توضیح میدم آیه اول وظیفه ربانیون احبار رو نشون میداد و آیه دوم عذرت میفهم و قال لو ان الذين كفروا من بني اسرائيل که من آیه رو از سوره مائده آیه 78 خدمتتون قرائت میکنم لو الذين من بنی اسرائیل، الالسان داوود و ایسابن مریم اینا ملعون شدن چرا چرا یه جامعه ای که دینیه جامعه که پیامبران زحمت کشیدن ملعون شدن یه زحمت خدا به دور شدن من. دیگه رحمتی نیست وقتی رحمت باشه دلها با هم که نیست آدم به جون هم میفتن خدا پرستن باشن خود پرست میشن چرا که به ما اصاب چرا اینا ملعون شدن؟ چرا دور شدن؟ چرا رحمت خدا دورن؟ به خاطر که که گر شدن تجاوزگر شدن و کانو یعتدون اینا مستمرن تجاوز میکردن تجری میکردن هم به خودشون هم به جامعهشون هم به احکام الهی تج... کانو یعتدون این اسیان و تجاوز و پیام برکشی چاد. یک صفت دیگه هم هست در مورد بنی اسایی در سوری بغله از خصوصیت های بنی بله بنی اسایی پیامبر کشه در بعض زباد داریم میگن هفتاد نفر و ما بین و اینا کشتن از بزرگان و از انبیا و اولیه خدا رو کشتن سر بریدن و اومدن مغازای های خودشون رو باز کردن انگار هیچ اتفاق نگفتده این پیام کشی آدم خوبکشی برمیگرده به اون روحوی تجاوزگریشون یهود ستمگر اون قشی یهود و بنی سالچه مسیحی و چه یهودی وقتی که چون از توان و انرژی از دین گرفتن خدا رو کنار گذاشتن غرب امروز ما هم همینه خدا رو نعفی میکند تا خدایی کند منه. کسی که خدایی میخواد بکند تجاوزگر میشه حضرت میفرماید شما این آیه رو دقت کنید چرا اینها اینجور کنند یه اتدون، تجاوز کرد شدن، اسیانگر شدن، پیامبرکر شدن کان ولای تنها عن هونن اینا نحی از منکر نمی‌کردن بعدی براشون شده یه سنت، یه ارزش، یه خوبی این دقت کنید گاهی جامعه بدی میکنه بعد چه میاد لباسشو پاره کرده، نمیدونم شیشه رو شکنده بدی از اما کند هست میگم به این کار نداشته باشه تشویرش هم بکنی خدا میوهب با تبابین تبابین گناه چون خدا دوستش داره بلی خود توبه مهمه درسته یوهب با تبابین یوهب با متطحرین اونا که در مقام تدکیر هستن خدا دوستشون داره اما اینها گناه میکردن تجاوز میکردن حق خودشون هم میدنن کردن یه فرهنگ بعد آیه ادامه لبه اسم آکان می خیلی کار بدی انجام دادند هم بدی رو خوردن و هم از بدی دوری نکردند و هم بدی رو لایتناهم نهی نکردند مستمر و بهش افتخار کردند و ترا کثیر منهم کفر الذین جامعه ای که از درون پوک شد جامعه گناهکاش دیگه طرف اولیای خدا نمیره به کفر توجه میکن این تعبیری که حضرت آقا چند روز پیش مطرح کردن که فکر نکنی همه مشکلات ما حتی مشکلات با ارتباطن میشه با خودمون با میشه نگاهتون به خارج از خودتون نگاهی که موانع برداشته باشی که ما بیشتر رشد کنیم اما اصل ریشه درونی شما اگر خدایی نکنده ما ریشه نداشته باشیم با میوه‌ای که دشمنان بر شاخه های جامعه ما بذاره دوامی نخواهد داشت هیچ کس به اندازه خودمون به یاد خودون باشه عبارت اینه وقتی که جامعه درش گناه سرایت پیدا کرد تجاوز سرایت پیدا کرد هر کشی سرایت پیدا کرد طبقات ایجاد شد بزرگان و رحبان ربانیون اونهایی که باید چراغ باشن چراغ راه نشدن اونایی که طبیب باید باشن تبابت نکردن، اونایی که حامی باید باشن حمایت نکردن، جامعه از درون فاسد میشه. این فساد به ریشه میره. وقتی که ریشه نداشت بعد به یه جای تکیه کنه، به کفار تکیه میکنه. قطعاً جامعه به کفار این آیه دومی که مطرح کردم، اگه من فرصت داشته باشم، فرصت دارم. خوش خوش خوش. ببینید من عضو میخوام گایم تو آیات توضیح میدم به خاطری که این بیانات حضرت چون اینجا خلاصه نوشتن خب حضرت دو تا آیه از سوره ماعده ما میارن توضیح میدن میگن و این نبا خداوند اینها رو معاخزه کرده ای بهشون وارد کرده بدکاری میکنی نکوهششون کرده چرا علما بزرگان احبار چرا خدا داره از بزرگان یهود خدا بزرگان یهود رو نکوهش میکنه امام حسینم هم بزرگان و علمای اصل خودشو رو نکوهش میکنه و اگر ما بخوایم مشکلاتمون رو مفرق کنیم و همین حرف باید به با بزرگان خودمون بزنیم. امام حسین مقایسه ای میکنن بین جامعه اون روز خودشون, خودشون و جامعه و یه بنی اسرائی به عنوان جامعه برتر و دینی اجر حکومت دینی و ما هر روز خودمون رو باید با اون جوامع مقایسه کنیم. اگر بنده. میگیم حسین مصباح الهداس و نتون النجات با این حرفاشه. بست. آقا وظیفه مردم چیست وظیفه احبار و بزرگان چیست و اگر فسادگی آقا به ما چه مربوط؟ ریشه یابی داره آقا میکنه. بنده. از امام موسی علیه السلام میشن آقا جان خب این خدا علما که مهمان شما شدن شما دارید آیات بنی اسرائیل رو میخورید چرا اینا رو چه اینا اینا هستن؟ آقا می فرماین به خاطر اینکه اینها کانون،, کانون ینالون من هم و رخبت هم مم... دو علت دار چرا سکوت کردند؟ یا ترس بوده یا رقبت بود بله. خیلی از من خودمون مثال میزنم من یک طلبه وقتی میتونم کاری انجام بدم که یک وظیفه خودم رو انجام بدم که که پول داره کارخونه داره نبودم امکانات داره نسبت به فسادش تجاوزش حالا یه داره اشتباهی میکنه چیزی نمیگم یا میگم آمه بیکاری بگی خودتا فردا امکان هم قد میکنه یه وجوهات هم پیشت نمیاره به ما چه مربوطه یادشون ترسم فردا پا پوش درست میکنه یا ترس، بله. یا تمعه این آقا عبدالله میگه فردا من اعتراض نكنی حرفا چیه پشت معرف زدی به تو چه مربوطه ناقا نا ما داریم كلام رو میگیم یا رهبته یا رقبته درسته. یا ترس یا طمع چی دومی هم نخواهد حالا چرا سکوت میکنیم چرا ما آینه نیستیم ما چرا زبان مردم نیستیم چرا میذاریم یه مطلبی خیلی عظم میخوام چرا میذاریم یه فتنه ای در یه جا اتفاق بیفته شخص رهبری تنهایی حل کنه من عالم وظیفه ندارم من سیاسی وظیفه ندارم من جبره رفته وظیفه ندارم من بهره من شده وظیفه ندارم ما کوتاهی میکنیم تا رهبری به زحمت میفته حضرت میفرماد آقا من این دو تا آیه رو برای شما خوندم آقای این نفری که اینجا نشستی معاویه داره کار خودشو انجام بده دین از دست رفته حق مردم ضایع شده حکومت دینی شده حکومت موروسی. خوبها رو کشتن حجرها رو کشتن امام حسن رو کشتن شیعیان ها رو کشتن دیگه جوری شده که فرماندارها ها فرماندار شدن والی شدن دیگه چه توقعی میشه داشت و میگن دیگه... چرا ساکتید ساکتی؟ چرا جایگاه و نقش خودتون رو انجام نمیید از چی میترسید میترسید از دنیاتون یا رقبتی دارید نه حالا رحبت و رقبت درسته. خوف از ضررشون و تمعه به امکاناتشون درسته. حضرت میفنن رحبتن امایه دارون و الله یقول خب اینجا حضرت میرن آیه معایده سوره چهل و چهار فلا تخشان از اونا نتصمی و خشان از من بترسی درسته یعنی ببینید خیلی نکته جامعه شناسی انجیبه. آیه سوم رو حضرت مطرح میکنن پس ببینید حضرت مشکلات مطرح کرد بله مردم به گناه آلوده شدن آقا نه مردم ما عالی ان اصلا از, از آسمان هفتم افتاده هیچ نه قاجوجون نیست ما تو مردم مشکل داریم دین می بی آقا اصلا همه آقای همه چیز درسته پس این مشکلات چیه مسلمان مدینه فاضله که نیستین قطعا نیستین و چون درخت طیبه ریشه داری هستیم از تا میوه نر... نرسیده یا آلوده معیوز نمیشی ما ریشه داریم ریشمون چیه مبانیمونه ریشمون چیه تمدنمونه ریشمون چیه بزرگانمونه ریشمون چیه ملت آگاهمونه حضرت دارد بشخص بگنید در زمان حضرت خب شدت خیلی زیاد آنه شما جامعه خودمون رو قوم یا ایران رو نبین جهان اسلام رو ببینید بله. چرا جهان اسلام امروز ما گرفتار پنج میلیون یهود هست چرا که بهترین منابع طبیعی بهترین قسمت های دنیا بهترین امکانات خدا به ما بخشیده چی باعث شده که ما نتونیم از اینا بهره بگیریم و به دشمن تکی ما مخصوم جهان اسلام بله. مخاطب ما دقت بکنم من دارم جهان اسلام رو میبینم به طوری که آقا ابو عبدالله جهان, جهان اسلام اون زمان رو, زمان رو ما داریم چند کاشو بر اون زمان رو داریم میکنیم ما این باید آیه 44 رو مشیم آیه 44 احسان خب یه فاصله رو بگیریم بازگردیم ببین شما من. آیه 44 از سوره مبارکه مائده رو دربارش صحبت خواهیم کرد گفتیم که دیشب و امروز روزه ها روزهای حضرت رقیه بوده ای مهتاب فروزان شب های الفت حسین رو نجیب با دستان کوچکت که به بلندای آسمان است دست ما را هم بگیر دست بر سر پدر میکشی اما چه سری چه سری موج اشکت طوفانی به پا می کند مگر شود در پیشگاه دریای عشق طوفانی نشوی با اولین ندای تو بغز ابرها بغز ابرها در چشمان آبی آسمان نشست و قلب زمین قلب زمین زیر پای بغزهای تو شکست لحظه های بیقراب را احاطه کردند تا ببینند امشب تو با سر پدر چه نجوا میکنی نمیدانم به پدر چه گفتی که دیگر پدر جدایی از تو را تاب نیاورد و تو را با خود بر یا یا یا صحبت میکنیم با حجات رسا و مستمین استاد لاجبردی در درباره آیاتی که حضرت امام حسین علیه سلام با این آیات در حقیقت می میزدند به اخبار و ربانیون داخل منتونه هستیم فکر می کنم آیه 44 مسئولی ماهی در قرار بله. بریم تو که فهم آیه از اینجور شروع میشه؟ نه اینا نه نطورات ها خودن و نورم خداون می ما توراتی که حکم خدا درش هست و فرستادیم هم درش هدایته و هم درش نوره یه بله. کمو به نبیون الَّذین هستمو لِلَّذین هادو و ربانیون و لح جریان این نورانیت و هدایت نبیون هستن ربانیون هستن و درسته. ارتباطش خیلی مشخصه به ماست من کتاب الله و کانو علیه شهدا. این ربانیون و الاحبار که ادامه دهنده کار نبیون، و نب... انبیاء خدا هستن مستحفظ کتاب خدا هستن خدا رو کتاب رو حفظ میکنن مبنای حرکت چون کتابه بر کتاب چیزی اضافه نمی کنند. نمیان خدایی نکرده هواها و حوثها کم بذارند زیاد بذارن خب یه نکته مطرم میشه خب چه کار کنیم اینها مردم نمی پذیرند دو نکته را یه مطرم میکنه که آقا با عبدالله بهش پرداخته ده. داره کنکاش میکنه که چرا شما حکم خدا رو که نوره هدایت قرآن جامعه تورات و انجیل درسته. این جامعیت رو کنار گذاشید قرآن داره کنار میشه فقط رسمش باقی مونده حفظش باقی مونده قرائتش باقی مونده مبنای زندگی نیست فلاق تخشب و ناس از مردم نترسید وخشم از, از من به ترسید خشیت خدا رو داشته باشید طبیعیه کسی که میخواد مردم رو به قلل برسونه شاید نیان اذیت بشه کسی که میخواد چوپانی کنه کسی که میخواد باغبانی کنه انبیا و اولیاء خدا چوپان امت خودشون هستن باغبان هستن باغبان و زحمت بکشه و صبور باشه ولاتش تشتر رو با آیاتی فمنن قلیلند کاری که علماء بنی اسرائیل میکردن آیات خدا رو میفروختنی چی مثلا آقا اینقدر ارزش داره نه برای اینکه که این آیه رو مطرح نکنن برای اینکه که این آیه رو اونجوری که حکام میخوان مطرح کنن طبیعتا جیرخار حکومت ها میشدن کاری که متاسفانه ما بین بینیم علماء جهان اسلام بعدن و که وابسته میشن به حکومت ها از حکومت بعد اجازه بگیرن فتواهی مختلف و جایی بله فتواهی که اصلا باید توسخوره واقعا یعنی عقل, عقل سلیمی این مطالب رو خودش هم نمیگی تا به نسبت بده به خدا چرا؟ حالا تشترو به آیاتی سمنن قلیلن نگاهید آیاتو من رو کم برفوشید و اصلا معامله کنید و تعبیلی نبین من لم کن به ما الله فعلا که همون کافرون اگر کسی به حکم خدا آیات خدا و کلام خدا حکم نکند به ما انزلالله و من لمگه به ما انزلالله فعلایک همول کافر واقعی ناست عوض میخوامیم رو تصدیم من آیه قرآن رو مطرح میکنم ممکنه من طلبه ارز کنم به خاطر شراحی قرار میگیرم حافظ قرآن همشم ده جوز قرآن هم حفظ بکنم اما آیه‌ای که بناحس مطرح کنم در مقام قضاوت ببینید امروز جامعه خود ما هم اگر مسئال قضاوتش اونجوری باشه که اسلامی باشه ما خیلی از مسائل رو نخواهیم داشت چرا سکوت میکنیم چرا اجازه میدیم یه به تول ما رو از بین ببرن لم یخکم به ما انزل الله فالله چه هم رو کافرون تو یه آی داریم حولا که هم قالمون چرا؟ میخوام زندگیم بچررف آقا بگم هستن میکنه بگم یه جریان سیاسی بر میدون خب بر تو رو خدا رو نباید بگی مردم که تاوان ندادن ببین اینا نکات است که آقا با عبدالله می فرسن. دارن کالب چکافی میکنن یک احبار و ربانیون ادامه دهنده راه انبیا و اولیا خدا هستند. درسته. این تعبیر که حضرت آقا فرمودن حضرت و این تزه حضرت امام تو دون جهان اسلام بوده درسته. که علمای عادل اینها ادامه دهنده راه انبیا از جهت اجراه احکام الهی و هدایت مردم، تربیت مردم، حفظ انوال مردم، گسترش انوال مردم، از باب تربیت بهداشت، درمان، حفاظت از انوال اونها اینها اوهتدار اینها اساس ولایت مبناش همین این یکی که آیه قرآنم تصریح داره و حضرت دارم یعنی خید باید ادامه بداختیم با رسول الله که تمام نشد بله. شما اولیا اینمر رو کنار زدید خودتون بیایید دفاع کنید دفاع داشته باشید چرا احکام رو مثلا آن بعدا تو خطبه دیگه حضرت ادامه خطبه حضرت مشاخص بکنن محور و ولایت قرار دادن پس هم دین باید تبیین بشود قرآن باید محور زندگی بشود مجریش باید از احبار و نیکان باشد حکم به ما الله بکنند اگر حکم به ما انزل الله نکنند جامعه گرفتار این فسادا نوری نخواهد بود عدالتی نخواهد بود رشد و تعالی الهی نخواهد بود و اون چیزی می شود که حکومت دینی آقا امیرالمومنین و رسول الله که بر اساس احکام دین و بر اساس خواسته خدا بود تبدیل میشه به بنی امیه ای که ما توضیح دادیم قسمتی از شخصیت اون رو بله. این آیه که حضرت فرمودن که نهایتش فؤلاء که ملک کافرون کفره به نعمت خدا کفر به کتاب خدا رو نهایت کشیده میشن به کفر کفر به ذات نیست ممکنه عارف باشه ممکنه خیلی اطلاعات هم داشته باشه اما در مقام حکم حکم مماندل الله نکنه اون در وهله اول ظالبه لم به بما انزل الله و ادامه بده کافره من لم یحکم ما الله فعاله کافرون این آیه سوره ماعیده, بس فتا... از ماعیده. ماعیده آیه هفته تو سوره توبرانه برسیم اونم خدمتون کنم حالا تیتر آیه مستر بشه با توضیفاتش هم در از کنم خدمت شما دا... به حساب در جلسات و بعد تیتر بشه. مشخص با ده. کلامات بنده بنده. خود میکنن که خب مردم چه وزیفهی دارن حزد میگه و مؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء وبعضه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويعطون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك يرحمهم الله ان الله عزيز حكيم چه آیه عجیبی اصلا مثل که نسخه جهان اسلام آقا اینجور نیست که فقط علما مسئول باشن احبار مسئول باشن مؤمن، مؤمنون و مؤمنا زن و مرد مؤمن اینا دوست هم دیگه هستن اینا پیوند دارن بعض هم اولیا و بعض اولیا هم من دوست، دوسته هم ولیگه اینا هم دوست همن هم هدف هم خوهر و برادر یک در یک عضو هستن بله. و هم نسبت دمگه ولایت دارم من نمیتونه نسبت به زندگی شما بی تفاوت باشه شما نمیتونه نسبت به زندگی من بی تفاوت باشه این تعهد این تعامل این رابطه ولایتی مؤمنین با همدیگه رو دارید این پیوند جامعه رو دارید خب چه کار بکنیم؟ یه مستمرن امره به خوبی یاد داشته باشه نکته رو فردا ان توضیح میدم. متاسفانه اینه که چیزایی که تو جامعه ما به خصوص خیلی موضوع امر من, من فیلم کنیم معروف و ما فکر می‌کنیم امر به معروف اینه که آقا خاله موهاتون نشون نده. بله. آقا آهنگتون نذار. درسته. اما آقا امر معروف معروف از بالا شروع می‌کنه. یک منابع مالی ما کجا میرود؟ بله. دو، قدرت‌های ما کجا هستن؟ سه، تقسیم امکانات به اینا اگر بعد تقسیمش اینا منکرن. بله اگر حق به حق دار نرسه منکره من ادامه توضیح رو در جلسات بعد میخونم که چرا این آیه رو ابردن حضرت این آیه رو میاره اولا مشخص کنه مسئولیت برای خواص نیست همه مردم مسئولیت دارن کلکم را و کلکم مسئول هم رئیت همتون هم بعد مراعات بشید حمایت بشید و هم مسئولید ما هیچ جامعه اسلامی احد نیست که مسئول نباشد برسته. به مقدار توانش به مقدار تأثیر گذارش مسئول این اصل اسلامی است همه ما به اندازه حداقل اقل نیازمون باید متنعم باشیم تأمین بشیم و به اندازه توان اون کار کنی من در مسئولیتی که دارم در ایتام قوم همیشه باید. گفتم گفتم خیلی عزم میخوام ما نمیخوام تکیه دیگری گیر گرد بیارم این خیانته بعد آدم ها به مقدار توانشون کار کنن خانم خانم 18 ساله شو خب میتونه کار کنه کار کنه یا درس بخونه کار کنه مفید باشه برای جامعه خب بعد تامینم بشه اینکه بعد تامین کنیم کار نکنیم آقا مریض نمیتونه فقیر نه فقیره تا... یه تکیه حرامه بله. این تعهد این تعامل این عهدهداری تکافو بله هر دو همدیگر رو عهدهداری کنند والمؤمنون والمؤمنات زن و مرد جامعه دینی همه مسئولند چیکار کنند یامرون بل... هم بعضهم اولیاء بعض اینها با همدیگه ولی هستند دوست هستند سرپرست هم دیگه اصلا اختداری هم دیگه رو باید بکنن بله. من یه مسئولیت دیدم به عنوان پدر بچه می مسئولیت به عنوان فرزند من یه مسئولیت دارم به عنوان ولی افراد همی مسئولیت به عنوان مردم اینا با هم تا... یک طرفه نیست بله یعمرون بالمعروف و ینحون عن المنکر و یقیمون السلات ببینم دارم میگن وقت گذشته خواه. منم به خاطر اینکه این آیه راحت حق آیه رو ادا کنم مواردی که آیه حضرت فرمودن را ان شاء الله جلسه بعد در خدمت شما هستیم اگه مصلحتی هستی شما تصرافتم داره خواهش خواهش خواهش فرصت اون داره تموم میشه من فقط میخواستم از شما خواهش کنم که حالا الحمدلله تو کشور ما با توجه به مراسم هایی که برگزار میشه حیاتی که هست شور به مقدار کفایت شاید وجود داشته باشه میخوایم شورمون رو هم کمی در این ایام محرم نسبت به ابو عبدالله لطف دوست دارم شما کتابی رو هم معرفی کنید که دوستا رو شنوندهمون مراجعه کنن بله پیشنهاد بسیار خوبی بود که عزیزان فرمودن اول همین 1 دقیقه پرست داریم قرار هست در روزایی که داریم کتاب‌هایی رو که من به ذهنم میرسه خواهش می‌کنم هیچ ابتدایی اما حتما کامل هست صحبت. ببینید کتابی که در مورد آقا عبدالله هست چند سری هست بعضی‌ها جزء مکاتل منابع منابعی که به تاریخ نگاری می‌پردازن بعضی از کتاب که من فکر میکنم نفس امروز ما خوبه بهش توجه پیدا کنه و دو سری کتاب است. یه بعضی از کتاب وقایع رو دقیق میخوان ثبت کنن و گفتگو داشته باشن و در کتابشون چه گذشت. بلی. بعضی از بقایه تحلیلیه. کتابی که به نظر من فعلا امروز بهش بپردازه این کتاب نفس محموم و محموم قومی صاحبه مفاتی. از جهت نقل تاریخی بسیار کتاب مناسبی است ترجمه های متعددی داره اگر عزیزان بخوان خریداری کنن و داشته باشن خوبه بهش بپردازن در کربلا چه گذشت ترجمه‌ای که انتشارات مسجد قطت جمعکران این کتاب رو چاپ کرده و کتاب مناسبی است از این جهت ترجمه بسیار روانی داره منوش خفاص قومی بسیار دقیق بودن سعی میکنن از روایات بیشتر استفاده کنن و کتاب سرفاص که داره از تاریخ خوا عبدالله یعنی دقیقاً از زمان مدینه شروع کرده قبلش هم در مورد از کنم خدمت شما اسم حضرت و زمان تولد حضرت و علاقه ای که این می مصومین به آقا داشتن و خبر از شهادت حضرت مطرح کرده و وقایع رو وقایع نگاری دقیقی کرده به عنوان از کنم خدمت هسته ختم با مقامی که این بزرگوار داره و نورانیتی که این در بسیار تأثیر گذار فرهنگی داریم منواش فباس قومی رحمت الله علیه من کتاب ایشون در کربلا چه گذش رو که ترجمه کتاب نفس محموم هست رو خدمت عزیزان معرفی میکنم ناشرش هم انتشارات مسجد مقدس جمع کران هست این رو داشته باشن در منزل خودشون هر ای داشته باشه گاهن این رو مطالبه کنن بسیار کتاب مناسبی هست عشان. روزهای دیگه ان شاءالله کتابایی که تحلیلی هست و کتابایی که تاریخ نگاری دقیق هست و خصوص کتابایی که خوب جدیداً چاپ شده و بسیار علمی و خوب هست و اون شده که منم ازش استفاده کردم زیادم استفاده کردم و بعضی هم از اساتید خودم هستن بلده. خدمت عزیزان ارز میکنم ان که مفید باشه صلوات داشته ان شاءالله خیلی, اعتماس اعتماس خیلی داریم شب جمعه شب زیارتی امام ابو شبی که خدا حسابش در بی حسابی این ایام یک زمانی است که آسمان اصلا میگن حد چه هستی بیا هر که هستی بیا باید. امیدواریم به حق این دردانه حضرت ابوالله الحسین مزدمیت اهدبی امشب که خانم حضرت زهرا بزیارت امام ابوالله در کربلا میذانم هم ان الله شریک کنم و ما هم بتونیم بارای سنگین گناهمون رو با عشق حسین که به خدا ارزانی داده انشالله ما رو بپذیرن نگاه هم به ما بکنن و ما رو پاک کن التماس دعا خیلی بیتو لحظان مرا امشب شفا دادی پدر بیتو لحظان مرا امشب شفا دادی پدر با بسال خیش قلبم را شفا دادی پدر ذاتش هجران تو یک شب نه هر شب سوختم خوش به من در کودکی درس وفا دادی پدر من در آغوش تو هر شب داشتم جا مرحبا خیش را امشب به دامانم تو جا دادی پدر I'm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 در کشورهای گوناگون چه میکنند، با ملتهای دنیا چه میکنن با فقرا چه میکنن با ثروت ملی کشورها چه میکنند، ابعاد عظیم حرکت حسین بن علی علیه السلام شامل همه این میدان وسیع میشود